اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب آلمین و الله على سیدنا و رسول الله و آله طیبین طاهرین و معصومین و نرزد دارم و علا عدای عجمعین اللهم افرنا جمعی المشترین و الحمد المشترین یا ارحم راحمین دیوز ارسان روزی به در روایات در قرآن نرمزه تمام راستی خوندید تهیاد محدود از که بلعنه یه روایت داره که نشت با قرآن میشه علیه که در دعا هم داشته الان این نفترون شون یادم محدود اشتباه شدون فسیل باشه خب دیدون داشته به نشت صحبت شد و بنابینیم شد که ببینیم اصولا بست این روایات این رو چی کار از خیلی با آیاتی کتاب؟ آیه سریعه در چش نداریم مثل آیات که سه شهای آیه تثیر شده باسته اما سریعه سریع به خلافه سه کلمه سه رو ما داریم و به خلافه فرصه مثلا کلمه کاهن کاهن رو ما در آیات نداریم اما در روایات داریم به خلافه لفظ شاعر شاعر رو در ورآن داریم این آقایی که در روایات همانوالی هست دارم میگم که آواریی هست که ما در قرآن نداریم اما ذکر شده تفسیر شده یا حتی آنجا نرو کرد نرو شده تخرازی در کتاب باحال کرده تخرازی گفته که اصل بغل که این آیه را تخونی با عین در واحد به این ادعای اشمار کرد بلا خود آیه ظاهر در اما چشم اما رواياتش چشم انصافا خب فرارونه میشه انکار یعنی واقعا اگر بنا بریدار این که بگیم مثلا اگر یک حدیثی بین نفرستان من خیلی مشکول باشه و این نکرده باشن معناش قبوله بی کنم رواد چشمه زبانتون از هم رواد زیاده هم محل اقتلاع بوده امراه حرفی بوده و از اون طرف هم در مجموعه روایات قوضه و استرغاق و نشره و اینها هم در رواد ده روید هست در مقابل چشمه هم توی کلمات و علمای ما زیاد آمده الان یه با مجموعه شواهد در فرح اهل سند و در دنیای اهل سنت به اصطلاح برده اسمشون شواهد بسید دینی در اون که جای شکلی در فرح اهل سند داره رایاتشون در احادیث سقیه جای شکلی مثلا از وقت توی بعضی عباراتش محل بحثه که این کلام رسولله یا کلام صحابه است مثلا که ان اینه انسان وارده قرم رو میکنه ولی جمنه رو قهده شطر رو داخل دین میکنه یعنی می میدی و ایسا میخوشتش رو سرش میبر و میخور این حالا حالی موضوع کلمات رسول الله یا جزور کلمات رسول الله هست این دیگه دیگری هست اما اجمالا یا مثلا آیا واحد حدیث از خود رسول الله هست مستقیم مثلا ابن عباس شنیده یا به واسه شنیده و آیا توش قصر و اختصار هست یا نیست اینا چرا جای بحث داره اما اصل این که چشم وجود داره این تو بحث نداره روایات فراغانه را بحث نداره و یک از درز هم ذکر شده برای مقابله بابو این هم توی مجموعه روایات هست حالا شاید درزش بود در زی شهرت خود روایات نهی نباشه یکیش اختصال بود که گذشت و به نظرم در بخواهی از آیشه نهار کرده و فکر می کنم در رواست ما نیامده در کلمات اصحار نیامده فکر می کنم اختصال یک عمرو ارفی بوده با اون محط نیام کرده نه باز نه اگر به شما گفتند، نیم خود خود رسول به عمرو عمرو ارفی بوده یک عمر روانی بوده که بعد هم ظاهرا مسخ شده در دنیای اسلام این که کتی کتی چشمی زد بعد این که چشمی زده آه این گوزو بگرده دستاشون شروع سوی آب بریده کاسه بریده کاسه برون سر و طرف بریده مکمعین یا معیور بریده ظاهرا در جاهلیت بوده بعدها این مرخی بوده قصیم بوده اختصال. یکیش اقتصاله که خب روشن نیست یکیش مسئله به اصطلاح رقیه است که این چند روزه خوندیم هم ما داریم ه و روحیه در جاهلیت هم بوده و یکی هم اوزه است یکی هم نشه است این ستا رو توضیح دادیم. انصافا مجموع این ستا ثابته یعنی روحیه زیاده, زیاده خیلی فرامانه آنها باقعه از مساده و مساده متعدد در سانه متعدد و در خود کتاب بخاری و غیر بخاری انصافا شبازه زیاده این نمال کلام در, در اون روحیه آیا اصلا رویه به خواندن و عوضه به نوشتن و عوضان کردنه و نشرت هم به اون افعالی که دیوی سوزیده خودش و این هم هرسهش بی اثر نیسته درسته حالا حقیقت تحصیلشیه در را برزرش دیو سوزیده این هم راجع بود چیزهای دیگه هم ما داریم در باقیه این که یکیش همون خرزهات تماعیم میگفتن چیز آبی، قرمز آبی، مثلا آبی آرزو میکردن که از کردیم الان هم در اروپایی هم مثلا نهره از آرزو میکردن این نقصه اینه که تأثیر رو اینجور میخم میدن این تأثیر این به خاطر اون تمرکز چشمه یعنی اگر کسی هم چشمش و ما فارس و شوره اینطور نیست که به مجرد یک چیز نگاه کنه تأثیر بکنه نگاه بکنه با تعجب با استحسان به تربیلی ها و نگاه چیز نگاه بکنه مثلا اجردی چه مثلا خونه چه اوزاری با این نگاه کیز گفتن اثر داره مثلا اعتمادش این بود که اگر ما کاری بکنیم جلو این چیزی نگاه گرفته بشه دیگه تأثیر هم سر اون تمام و خرده گفتن خرد یا مهره ها یا همین نعله یا مثلا در خوره مجموعه از یه چیز درونه ولی که خیلی بی ارزش باشه اینا فکیشونی این بود که چه اگر به این ایشو بی تثیر که نمی کنه وقتی این خورد شکسته میشه اون حالت قدرت و پختگی قضرت از دست میده تاثیر عمر نمی کنه به یک مقدار خرزارا میدون که کردن یا نعله است اون نکته فنیش در حقیقت این بوده پس بنابراین ای اونا این تصور رو داشتند که در چشم خصوصیتیست که این تأثیر رو ایجاد داره و این مدر اصلش درسته حالا از کدر مشکلی که ما در متونه که خوندیم دیدیم و مقدار چیه ای یکیش بحث عبیلیت بود چون اشائره خالب نگه جازه هست اشائره تو منکر عبیلیت ایمان جبیه عادت رو محصر کردن هر پایی که خونه یکی بحث اینه که آمدن یا جریان عادت این بود که تاثیری میکنه اشیاء رو به جواهر و احراز میگفتن حتما یک اجزای تغییریه از چش در میاد به این تاثیر رو میکنه اینا این بحث مطرح که این عباراتی که یا و اگر اگه احراز بشه تو جواهر باشه یعنی جواهرش روهیت الهی باشه شوادی این تورییده که دیو زاداده و لذا مثل فخر و دیگران ارجاع شدن به خطورات نفس نه به اجزا کرد که از چشم در میان و این که قضرت نفسه تخیل نفسه قدرت... و این مطلب که چطور قدرت نفس میتونه تخیل نفس قدرت ورم یا قضرت میتونه در خود انسان تأثیر بکنه اگر قدرت خیام یا قدرت ورم قدی شد میتونه در, در سرد مقابل هم تأثیر بکنه از این را مثلا فخر رازی اینا سعی کردن وارد بشن که بازم توضیحات بدهن. البته ما یک مشکل کلی داریم، اکثر همیشه ارز ک. ما در اونی که در مکتب واقعی آمده با اون مقدار معلومات زمان خودمون رو اندازه بگیریم. خب این مشکل دیگه، مشکل کار همینه. خب اینها اصلا نمی‌دونستن که چی اینا و امواج وجود داره و تأثیری که امواج ممکنه بذاره. ممکنه امواج بلکه میلیون ها کیلومتر راه بتون تاثیر بکنه اما خیلی این بسیاری ها توسط امواج از زمین کنترل میشه با فاصله میلیونها ها کیلومتر یعنی اینا در اصطلاح قدیم نبود یعنی آشنایی نداشتن دنبال همون جواهر رو اعراض بودن فکر رو اعراض بود که این با جوانه رو اعراض جور درمیده نمیاد این در حقیقت تاثیر موجه که مخصوصاً خب شاد مثل ست سال ساله با تمرکز انواز و عشقه و شعاعی که از جسد در نیاد همین شعاع لیدر لیدر این مخطف ادهی از کلمات ر و ZR ای و ز و ای آ این مخفف مجموعه عشقهی متمرکز در نقطه واحد تقضیح مضمونش این لیدر ای استراحه مثل این چیز نیست خودش شدیه رو که در مقصه وارد متنرک گفتن این اراهمون مییم با بابه با های لاعات صحبته کرد. اینها ظاهرا که احتمال این قسمت رو نمیگاه. و ما اختیال کرد امان به تاثیر نقش و تاثیر نق قبوله نمیخوا بگم نه اون همجا خود قبوله اما اینکه در بدن انسان که اموز کرد در این اندازهعلم خیلی ثابت شده عکسا گرفتن با یه دوربین های نامورارده ننشاریم، عکس شما دیدم یه اشوایی در وجود 3 سانتی متر شایع الکتریکی در اطراف بدن انسان وجود داره البته گفتن که نقاط بدن مختلفه انسان ها هم مختلفند دو نقطه بسیار دید وجود داره یکی در چشم یکی هم در سر انگشت ها این مسئله بر ثابته و این که میگه اگر کسی با چشمی ها چش بزنه نگاهش دیگه مال همون شبیه شعله لیزر موننده یعنی شبیه تمرکز شعاعی سر چشم خارج میشه و در طرف مقابل این تاثیر رو میکنه. تنها اینکه روشن شد، این که باید دائما این اثر باشه نه این دائما لازم نداره اثر باشه. اولاً باید قدرت این شخص باشه، قدرت چشمیش و بعدم باید رو تمرکز باشه. و از اون بالاتر اون طرف مقابل هم قابل هم قابل قابلیتش این قبول بکنه. اگر اون مثلا یک انسان نیرومندی باشه و این تاثیرش کم باشه نمیتونه برای از سر بگذاره کردیم و دیروز هم یک چودی که عرض گاهی اوقات هم این خیلی نقطه زریفیه گاهی اوقات هم ممکن بوده تاثیر شش در طرف مقابل و در نیرویی که طرف مقابل داره به مقداری باشه که ایجاد مثلا مرضی اون بکنه و گاهی اوقات نقطه مرض قابلیت خود شخص بوده و لذا اینها مثلا به همون ارتخاط خودشون و بعد تو روایات ما مثلا گفتن اگر بدن آروده باشه کسیف باشه احتمال این که مثلا مریض بشه واسه یک بیشتر راست دارنست خود آروده بدن زمینه رشد میکروب یا ویروس یا به این م... مشکل نداره یعنی که مشکل علمی که مسئله این حق باشه و اون راهی هم که مرموم سید رزید در تفسیر حق اون راه هم درست نیست یک امر است. این نگه های در انسان که هم به لحاظ قدرت چش یا قدرت انگوش میتونه تأثیر بگذاره و به لحاظ قوت خیال میتونه تأثیر بگذاره ارتباطی در اینجا از خدا در انسان قرار داده این هست اما از کردیم این درجات داره یک نواخ نیست شرایطی داره مثل هر این پرسون شما پشت پان تشویم آنتنو خاصی شکل خاصی میدوند اون انواج رو بگیرد ا یه دیگه ترتیب کار یه چیزی شبیه اینه یعنی اینطور نیست که این امواج بسن دائما تأثیر بگذارن مثلا شرایطی داره خصوصیاتی داره و بعد اون طرف مقابل هم که به اصطلاح قَدَری معیون یا معین میگه اون هم داره خصائص و شرایطی است و اینکه گفته شده که راههایی هست مثلا حتی مثلا میگه حقیق بتونه در همراز بکنه من این وقتی هم ارز کردم اینکه آقای بود در روز رو پنستان استاد دانشگاه بود من متلهی بود هم خیلی استاد ممتازی بود ما در تحقیقا دیگه در دانشگاه درسید کردیم این عقیقه یمنی نقطه رنگه قرمزیم که داره اینه که بر اثر تابش آفتاب، اون عشقه ماورا قرمزا بیادم حتیتون خیلی درمان شده یا ماورا قرمز یا ماورا درم در اون میشه چون خود این مسئله تجزیه نور خب می‌دونی در فیزیک قدیم نبود در فیزیک جدید که 6 تا نور پیدا کردن، 6 تا رنگ پیدا کردن در نوری که رنگه و باز به سلام هم هستن که ما یا که یک به نشیزان یا این برای به نشیزان، گذاری امروز با همین اشکال ای ترجمه براه... این اکثریت است در این هرمر واقعی است اگر حدی برای این که اینکه ایشون اداش این بود که ما سبب تغییرات دیگه کردیم حتی ممکن است بعضی از انواع حقیقی بتونه از در مقابل تشعشعات اتمی مقاومت بکنه چون این همین هم جو مرتب از تشعشعات ماوراء الرمز داره بعید نیست که مثلا این شعایی که از این در میاد در مقابل با شایی که از چه طرف در میاد مثلا به استرار جنگ ستارگان این دوتا با هم تداز برگورد بکنن و مانع از تأثیر اون شعار چشم بشه درست میکنی؟ یعنی این یک همه را واقعی و یا مثلا دارای یا آثار دیگری باشه در این نوع من کسی گفت من خودم دیدم مثلا شما اگر این اون عقیب چاقو به چاقوب دست بخواه خون نمیاد. اون عقیب در خون میاد. خب الان مثلی برد از جراحی ها اصلا با, با همون عشقه لحیم میکنه پوست رو میبنده این ممکنه ای چیز عجیبی نیست در اون که درمیان مثلا عجیبیه این در حقیقت این عشقهی ای که از این درمیان یا مابدن الان فراموش شکرم شد بعد زمان هست یا مابره به یا شد این عشقه بتونه پوست بدن رو چیز بکنه لحیم بکنه اصولا در این که بعد از اخسام سنگ ها دارای آثال عجیبه ای هست این چه بحث از سر من خودم در برام چیزی یک از سنگ کوچیکی ها سیاه محسوسی هست از خدای از کوه ما ها مثلا این سنگ, سنگ عجیبی هست این ماری گزوش انگش زد حتی خون هم هم هم. از انگش این همین سنگ مارون مارون من قرعه جام تو تعجب می کنم من اثرش که این می کشه و مضافن به این انواع سنگهایی در همین کتاب حالا چون در دستگز هست خب نسبتا هم بیشتر نماشه کتاب توفیحکیم اگه نگاه ندربار در, در درزه هجم به در نظر دستگفن تا سی تا سر رو اسم بره و آثاری که برای اونها هست که واقعا در از آثار عجیبه و من با خود من هم از طرحهای دیگه هم خبر دادن که ایشون ننویسه سازه دیگه مهم اینجا بگر چون بازش مناسب نیست اما که شماها در این که خداوند متعال در طبيعت آثار عجيبه ای رو قرار داده بینی میشه اینطوریش کرد یعنی. به آره. قول این علمای در 14 قرن میگن تجربه و وقوع خارجی احواذری بر مطلب. و دستور هست که دختر انسان آثار چه شرو به که از این وسائلی که گفته شود از ذیب ببره. البسه خیلی از اینه یک این جهات غیبی هم همیشه هست یعنی اون جهات غیبی گفت که فرشترش دو دست به دعا نگرد داره یک جهات غیبی که مثلا مثلا پس اون صدقه از صدقه تو تروت دول بلا قلو ابره قضا قلو ابره به یعنی که قطعی بنابوده قضای الاری میاد با صدقه از ببینید این درمیقه چه کار میکنه صدقه یکنون حفاظ در اون به اصطلاحه آلون معین یا معیون یا اونی که چشمش خوده قرار میده که چشم تأثیر نمیکنه. این امر عمر واقعی است عمر خیالی هم نیست واقعیت داره و از همین این از این نشه رو من دیگه سوزیاد شهر از برای این مدهش بدن نیومن میشه دیگه مرض درون روش نمیکنه. کنه یک رقایت معروفیست از پیغمبر اکرم سرات الله سلام علیه الحبت الحبره السوداء شفاء و دوا كل داء الا سام دیگره سام به الموت حالا این بله مال کیه مال رسول الله یعنی سوال جو از رسول الله که بعضی روایت ها آمده از عایشه شار کرده خارج الموت حالا به هر حال خب این از همون طب قدیم محض کلام بوده که بگم این که این بحث شد میگم یه چیز معروف نیست موجبیتش می‌خویم برای دوای همه مرض‌ها باشه ولی امکان نداره مرزه؟ چون ها مزاج‌ها در درنیه فقط متفاوزه یکی سرده یکی گرمه یکی تریه یکی خشک بعضی مرض‌ها از خوشی حاصل میشه بعضی مرض‌ها از تری حاصل میشه بعضی مرض‌ها از گرمی حاصل میشه بعضی مرض‌هاست خب این میشه یه چیز واهی در حالی که اونی که گرم باشه مثلا تر بشه بده میشه که تری سرد اونی که تری یعنی خوشی در مقابلش اگر عطوبت زائد در بدن خود، اگر یابسته باید ترش بخونه آیه چی نمیشه یه چی نمیشه یه چی علاج فن حریف باشه این امکان نداره لذا در خود کتب قدیم و در کتب روایاتشون از فطول باری این, این بحث قدیمی نیست در میانوشی خود اینه از وقتی که قدیم آمد این آمودن با اصطلاحات قدیم آشنا شده هم از وقت خب نرمون بعد یه واشوسی مناقشه شروع شد یعنی شما چیزی اصلا نمی‌تونی تصور بونی مزاج‌ها مختلف مرادها مختلف نمون فقط بفهمید نمختلف معتزز و مستلزم در هر این سیاه‌زاده یا مزاجش سرده یا گرمه یا معتدله چیزی که یا سره یا خشک یا معتدله صلاح سم اثر میگیره می یا سره یا خشک یا معتدله این که دوا کل به اصطلاح شبان لکل دا این اصلا معبول نیست آن تصادفا جزه از این در حجاز نوشتن یه تحقیقاتی بعد از این اعتبار مسلمان در غرب انجام بدن در چند تا مریض رو با همین سیاه داره یعنی با معالق به اصطلاح کار علمی این ما صحبتی میکنیم همه شو یهتمل و یهتمل اونها رو نهیم یهتمل به درد با آزومه مجموعه آزمایش‌ها رو انجام داده، آورده نتایج آزمایش که با سیاه‌دانه روش इलाज شد اون به این نتیجه رسیده که سیاه‌دانه مهمترین نقطه‌ای که در سیاه‌دانه هست، قدرت دفاعی قدم رو قوی میکنه یعنی اصلا این دست ذهنشون نبوده. فقط بگو اینا که ذهنش اون این بود که این مرض یا از گرمیه، یا از سردیه، یا از خوشیه یا از تریه. این سیاه‌دانه چه این سیاه زانه یا ولهره گرمه یا سرده یا چره یا خوشه یا موزه ذهنیه خود را گرفته مخصوصا الان که این مرض خریزه اید پیدا شده خب اید هر دیگه اید ویروسیه که بازن دفاعی بدن رو ضعیف می‌کنه میچو می‌گه وارد نمی‌شه یا ویروسی که وارد بدن مقاومت نمی‌کنه سر مشربه ایدینه این بر میگه و این عبارت رو که برگرده به ذات بدن به اصطناح شبیه اینو هم در طب قدیل در اصل دارن در اصل دارن تحبیش اونی که گوهر زندگی رو تقریبی میکنه این کنه که انما فرض که زندگی مثل یک شمعیه که این شم شمعی که میسوزه بدن انسان روشنه اثر میاد این شم روشنه گرمی داره شفا اون ناست اینی که اثر میتونه برای امراض مختلف شفا بده در, تف... در همین توفیق حکیم هم داره اون جوهر حیات رو تقویت می‌کنه این که شفا چه عجیبی تداوی شفامند داره اثر و در روایت مبارکم سیاه در این آمارگیری که الان جلوشم پیش من هست آمارگیری کرده چندی مرض رو درمون یک ماه دو این مقدار مصرف سیاه داده بقیه من. نتیجه به اینجا رسیده خیلی که خیلی از یعنی واقعا مشهوم میده که احجاز نفتاده. ما زمان ما این رفت میزن. بوده که در تفکرات علمای اسلامی بوده که چطور میشه رسول الله نفتاین یه یا به همه امراض رو از نمی میشه دیگه. الان هر اون مشکل الان شده. من میکره بهتر بهترم حل بشه. اینه که اون همه امراض و از ذهن میبره نقطه چیمه که قدرت دفاعی قدم رو بالا میبره حسن. خوب بخط بکنه؟ یعنی این گیاه رو نباید اون حساب تری و خوشی و سری و یه هر حساب کرد. و رضا حتی در این حتی در این حتی بخط بخار بکنه حتی در این حتی بخط بکنه که از راه بسیار خوب برای مبارزه با ایس همینه اولش سیاه داره دقیقاً چیه بیان یا بیان داره یعنی خلاف این منه که همون غذای کبد چون احتمال داره که همین حرمند باشه یا سفند سفند باشه. چون اونم یک ذذ افونیه سیاه تیره دیگه همین ذذ بسیار بسیار تیره حرمنده در اصل کد مستعمل خارجی شده راحت اما داخلیش رو باید باذختر استعمال کنه موی رفیق دوستش داره ندونه زنده است قدرش کنه این توی ایام بعضی‌ها زندان بود راه خودش را رفت واسهش زندان گفت که من مردم خوشا درمان درمانی برد تر اون وقتی که ما هم تو عراق بودیم سالهای اواخر هست این خبیصا یک سم والیوم میگفتن میکردن صحبت که ما مال فریستینی هم با همین بدون شد این آقای آقای میگفت این سم والیوم میگفتن افراد آزاد میکرد بعد دو ماه این مثلا زندانیان سیاسی بود یکی جان کلی اینها از بکش شمبر هم ما بیدم آزاد داشت خب ایشون تواسید ها پسرشان ها هم هم لندن از لندن خب اونجا چیز کرده که آنجا شما سم دادن و این سم دفاع چیز ندنه. جواب ندار و تو, تو ماهی شما زندهی برای میریم این این راه برس ها که افراد و اینجوی آزاد و از خودش هم از دو با که خارج از اینجا برای خودشون هم گفت از اونجا برس هند در همین به همین اسطام و مثلا درمان اله شده. زلاته دوام یه چیز. چند 20 سال زلاتش جا. یعنی با از مجموعه ادویه و لذا من در همین بحثا طریاح یا فاضه یا طازه رو به همین معنا اینا به کار یکی از چیزهایی حالا این چه نقطه‌ای هست چه امواجی و از خورشید سیاهدانه دانه میگیره. البته گفته شده که مراد همین سیاه‌دانه معروفه. گفته شده مراد این اسفنگ هی. گفته شده مراد هر زیره سیاره تو زیره سیار فیلی آثار نافعی داره این شاید در این جزایی که فخش دیده فرد دارم موجوده با آمار علیت به صحبت این بود من اگه یاسون باشید در حرفای فخت راضی هست که این حرفا تو آمار نیست این با آمار و با, با ازمایش های بالینی افراد معینی رو و مقدار معینی مثلا اینا روزی دو گرم مثلا سیاه‌دانه داده بعد تا 10 روز تا 20 روز باز آثار رو بررسی کرده اون نتیجه نهایی که به شکیبه تقوار راستن آخر مش این اعجاز علمی رسول الله در اون زمان که شفاء اون لکل دا عجیب چه <laughs> که 600 سال از که پای اسلامی تشکیل کرده <laughs> که این معجزه شفاء لکل دا اون وقت باهن صاحب دین کنه چرا چون این اومدن زمینه مرض ها رو نگاه کردن اون زیر بنای رو نگاه نکردن تاثیر سیاه رو قدرت دفاعی بدنه وقتی قدرت دفاعی بدن رفت همه مرض ها طوریشون میره دیگه نگاه نگاه کنن مرز سرد یا سر یا خشکی یا گرد دیگه به نگاه نمیکنه دقیقاً همین روش به مسئله ششام همینطوره این مواردی هم که نوشته شده برای مقابله با او از مثل بعضیشان نخوندیم مثل صدوار مثل عقیق از کلم این آقا من میگفت که ما به نظر ما که عقیق رو در آزمانش رو تجزیه کردیم اشیاءی که ازش در میاد تردید پیدا می‌کنه یعنی برای این وردی که شما می‌بینین این همینجوری تولید اشیاء می‌کنه میگه حتی شما به نظر ما ممکنه اینکه شما اینا به اتمی هم باش ضروریشو بگیره به راهمون اتفاق می‌کنه بیشتری که واسه شما از اون که دیگه ما فعلا به همین مرزو بحث خیال داشتم واجبه مساله کهنه و ارواح و شیاطین هم صحبت رو که خیلی خارج می‌شه ولی من به هم بحث خود سهر خودمون به همون چشمی خارج بس. بست تصیر نقصم با جوی دیگه بررسی بشید حالا کنم که راجع به سه چون ما متعارفمون اینه که رجبی مباحث کندم یه اشمالی هم از کلمات و استاد میکنیم و مرحوم میشه بعد بارد تحقیه مسئله میشیم چیسی به صاحبا اشعاره از و همان کلمات و استاد اگر این این آیه چرا هست ان یکان حجم شرع هاشم رصد هست که مرا چشموج هست که سریع نیست خود کلمه عین و سریع در قرآن نیومده بسم الله به من با چرا هر با السونه، برای بله چرا؟ از که تفسیر شده. من الان تو کف سر ها میاد، بنی علات با باب حتی گفته فقط که مفصل. من با ملواه. اتفاقا از گفته عکفال مفسرون که نیرو نشین رو با دیدن من مییم. کیا؟ که این آیه برای نواده چی میشود؟ نه. اینه. و این یکا دولد نه و این یکا دولد هم مرمون مجلسی هم زانرم و کتاب های دیگه میشوند. که کتاب بحث سنت هم پتن باری داره. که آیا... یا کتاب دیگه میماردی داره. ببخشیم درزم تب نبوی داره. مال ابن قیم. تو کتابش سنتی هم که آیه ها دیگه در ایناس آوردن. اما اصلا سریع نیست. که مکیمون آیات ها زه اشکال نداره قبول کردم قبول که با تفاثیر من قبول کردم مشکل نداره قبول کردم با تفاثیر اصلا تصریح نشده با تفاثیر از, از, از آزیناش هم اطباق مخصر نه فقط خواست اما میگم بازم باز به تفسیر یا روایت قبوله چرا مشکل نداره راج قصه در این کتاب مروم و سا از صفحه دیگه سرشتار سفحه این چاپ دارم بعدا این تا اون چاپ جهیل کردشون روحبنی جهیلی باشه به هرها در مصباقه چیه؟ اسم که که باشه؟ مصباقه که آن در مصباقه که گستشون بگوی فراموش ایشون متعرضه من یکی دو تا نکته فمنی هست اونا رو بخوام متعرض باشم بقیهش رو یعنی اون نکات دیگهش رو دیگه از خارج متعرض میشه بحث کردن که لا خلاف فی حرمت صرف جمله بله یه دین و دین من مقام علیه اجماع و مسلمی بحث و بردر و اینا از در آیات مکی که بیشتر آیات ما در سهره در آیات مکی بیشتر جنوب های عوائدی صحر مفره که مثلا نبوت سر هست، این نه بحث فقهی اشوین رسو خدمتون مقام علی اجمال مسلمین این بحث فقهیو ای بیشتر در مدینه مطرح شده در آیاتی که ما در سوره کلمه مسعود بعدش گرفتیم و نحوی نداره اونایی که به کار برده شده اکثر مذهبا شخص آیات فقط تو مدینه باشه دقیقا همه مکی اینطور که ادعا شده بنابراین روایاتی از ما وارد هست اصلا درسته این روایاتی که از ما شده اجمال دریاست شده اهل بیشتر مال مدینه است. آیات مکی بیشتر های عقائدی یا به اصطلاح روزمان ایدئولوژی کاربردی و این یا جاروگری این همون چیزیه که الان دو مرتبه با در واقع مثلا در دنیای غرب که دین اینو جادوگری استفاده اجزای جادوگری استفاده این در آیات مکه رد شده. مثلا بحث این نبوده که حالا حرمت باشه. این یک ای مثلا بعد حالا نقط ای که اینجا قبل از اون بگن. در هااش کتاب مثل این مخصص دو جلد هم که حالشون فوت کرد تازی بر اون آش تهرانی در اون دو جلد ایشون حاشیه زده تاثی روات از بحث ژالی و در اون مخص محرمشون نواشتن و ماششببا ز که در حال حالا نمی. از اون بعض از روات همجا سحیید در سر سعی ضی. اینجا مقدار رجالی این آیه چیز نوشته مقرر ظاهرا ظاهرا چنین که خدای ربوبی تو بحث متعرض نشده باشند در حاشیه بحثای رجالی دارند عرض کردن. هم حتما اینا رو ما فعلا نسبت به استاد نمیتونیم بدیم مگر اینکه ایشون بعد ارجعه داشته استاد الله فکر نمی‌کنم تو درسیشون گفته باشه خب توش هم حرفای ظریف داره حرفای بی اساس داره مثلا فرسون در اینجا داره این روایت بود که مال قامون نصرم قاموس از صاحب و مرعون زعیف اون نوشه لحسن علی کوششی حسن علی کوبی از اجلار طاقه است این نوی عبد به موقعی است الان آیا حاله آخری. بعد یکی دو سا مکلبی رو که بیشون داره در اینجا میخوام فرسونه که مثلا روایت سکونی بیشون رو داره نوشه زعیف به خاطر نوفرید هگرم بعد از این محلب مال استاد بوده بعدها استاد از این مبنا برگشتن پر از خوب دفت مکنی این چیزایی که در حاشی کتاب سابقه هم چند بار ارز در حاشی کتاب آمده این آرائه یا خود مقربه یا حتی اگر استاد محافظ کرد مال اون زمانیست که ایشون چون محافظوی وقتی که مکاسب فرمزن هنوز خودشون تو رجال کار نکرده بودن اون محنا داشتن. که به اصطلاح ظریف منجر نمیشه جابر و کاسر نیست شوحت عملی جابر و کاسر معنا رو داشتن اما تطبیق معنا توی, توی فکر نکرده متروده چون اصلاً وارد رجال نشده بوده چون به خاطر حدود سال‌های 82 83 قمری وارد رجال شده این کتاب مسواک و فاهه سال‌های 670 قمری است قبل از اینکه وارد بحث رجال میشن لذا یا ایشون اخت مشهور کردن یا نظرات خود مقرره اینها رو نمیشه به استاد نسبت داد مخصوصا در بعدش عوض شدم بعدش رو ازمی کنم مثلا روات سکرونی رو ایشون داره که ضعیف که به نوفلی. اینجا نوشید مرحوم استاد درها برای شون که نوفالی سغرد به خاطر هم کامل زیاد و هم به خاطر تخصیل علیه مردانی و بعد هم از جعفریات ارز کردم ضعیفتون زیفتون به لیموسرم اسماعیل بعد این سندشون قبول کردن اینا میخواهم یک نکات و عرضو این رو ارزو بکنم این موسرم اسماعیل رو شاید اول مقناشون بود من نمیدونم ارز کردم موسرم اسماعیل نبه موسرم جعفر صلی اللہ علیه اسماعیل پسر امام, امام و موسر پسر ایشانه خود اسماعیل با فرزندانشون رفتن مصر مصر در اون زمان چون فیمابن مرکز اسمایلی ها شد زمین ساز دولت شیعی در مصر بود احتمالا این که رفتن مصر به اصطلاح این روزی ما اصطلاح مثلا دنبال عمل مسلحانه عملیات مسلحانه یا به اصطلاح روزی انقلابی بودن چون این اسماعیل به سر امام کازم سمان الله علیه مرد چیزی هم بود محترمی هم بوده چون در سال دیویست و یعنی حدود دیست سال بعد از شهاده که موسا می جرفت در مدینه پوت میکنه امام رضا ایشون رو می که نماز برش بخونه از رضا، از جواب جوان از زمان امام جوان اموشون اسمایل رو می فرستن که بر اون نماز بخونه زانه رو ایشون بعد از این یعنی باید مثلا ایشون یه چیزی نزدیک سی چه ساله بوده که با بچه هاشون میرن مثل و خیلی رو ازش خبر نداریم بخاطر مثل این مثلا دیویست ایشون در مدینه بود فرصه سال بی سالا ایشون به مصرفت روشه حدود هشتات سال بعد انقلاب در مصفی بود شد در اسطلاح موزیان یعنی اسماعیلی ها در مصف سلطانه در خلافت فاطمی پس مانا برای اینا کسانی که در دعوت به حکومت به اسماعیلی یا حکمت شیعی در اون زمان در مصر تأثیر داشتن نسی چون پسری داره اینا موسا مصر ایسماعیل از ایشیران ما خبر نداریم اینا مصر بوده از داره مبینه خارج بودن از فرین بعدها از زمان خود اسماعیلی ها در زمانی که دیگه خلافت فاطنه بود شخصی اینا محمد ابن محمد ابن اشعص یک کتابی رو در میاریم یکی این رو من از موسا از, از م اسم این کتاب به این جهت شد جرداری ها نه به این جرداری هستیش رو از خیلیس ها برن اشعسیات رو داشت این محمدرن, محمدرن کتابی رو در میاره میگه من این از موسا از پدرش اسماعیل از پدرش موسی من جرداری هستی میکنه این از کل کتاب در مرس منتشر شد حدود سالهای 310-314 به بغداد رسیم به نهر اجازه چون نمیرسن چون مس مرکز به اصطلاح موزیما یک کشای انقلابی بود بغداد زده شد لکن این کتاب از کردم توضیحاتش از جرش نیست در بغداد جا نیخته آن نجشی نهر می کنه شیخ هم نهر می کنه بعضی از مزرگانم اجازه شیگ رسن من اون طل افراری و در بغداد این کتاب جانه افتاد توضیح شما مفصلانه ارز کردیم و البته سنیه هم به خاطر اینکه خاندان رسالت در رسال وجود داده دا این کتاب وجود داشت این رو نهره کردن این نسخه رو دو سه نسخه هم در بغداد رسیده بوده یکی از اونها هم توسط با قول خودشون علی امام رویانی که شافی ایست او هم میکنه اون نسخه رو رویانی که تا حالا رؤیانی با این اسلامیان میشه فردی و اولین کسی که در دنیای اسلام یه اسلامیان موله داره تغییر موله دبینن ملاهه داره ملاهه دارن اون رؤیانی از شافیه ها و هم فرق کتاب فرقیدار همه قصوی و آنها مگه بزرگوارشون بزرگ آرامش رو با احترام نمیکنن شافیه ها در کتاب فقهی و اصولی خودشان هم اون رؤیانی اسلامیان چون دست به ترور پیدا کرده اونها یه فیداریان اسمایلی معروف رو گوز. همین آمان هم ترور میکنن کنند رضا به شهیل رویانه این گرد این شهادت یکی از خودمون اسمایلی ها و فیداریان اسمایلی بود که اونا رو ملاحظه گفت اگر تی این اسمگذاری رو خلافت بغداد خیلی گنده کرد چند دفعه از کنم نیدونم بعضی هم شهیل ما اینجا هستن از قائمی ها در اصلاف رو قائم روز دارن اسمایل هم هست آخ هنوز هم اون داته ها اونا ملحقه هنوز این اسمی که رویان میگنش الا یوم دار. برای این بیشارها تفلاح میشه. این معترض که اصلا ملحق هم. اصلا از دین خارج هم. اسماعیه به خاطر تحبیل رو بخاطر حرفی که دارن از دین خارج هم. به هر حال این کتاب توسط بعضی از سنیه ها باز پخش شد و مرحوم راوندی این کتاب رو به عنوان به کرد. این نواده راوندی که تازه چاپ شده این همین کتاب اشعصیات نصف رویانی درد همین این برای بار دوم در قرن ششوم ششوم این کتاب در بین ما آمد باز هم جا نیفتاد متاسف کن بار اولش هم جا نیفتاد بار دوم هم جا نیفتاد تا حدود دیست و سال سالسال و خوردهی سال نزار خورده. سنده دیست یه نسخهی را از هند اومده هم اونا در حقیقت همین نسخه سعد در احمد در مصالح کتاب یه نسخه وارد هم بردن که قبل از حاجی نوری حاجی یه پخش کتاب مصری رو بعدم برای اولین بار فرست ناروها بونوجیاتی چاپ شد ادس الله در صد کتاب حساب بچه از اون وقتی این کتاب چاپ شد حالا جو اساتوز ما این علایدی کتاب ها توی جواهر حذی دیگران همین اشعصیات دیگرای خو میاد اسم برده دیگه اشعصیات دیگه افتاد بعد از حاجی نوری انقاف جای خاطرش در حوزه ما باز کرد. مشخص شد این تاریخ اجمالی کتاب و نسخه از کتاب که مورد پس‌نویسی که الان مورد بحث ما شده و دارن روش عمل می‌کنن این نسخه از هند حدوداً در قرن 13ه به نظر در 13ه، پس چه طرفی تاریخ مورد نسخه ایران داره تو خود نسخه در سال قرن نسخه از هند بود. دقیقاً این نسخه الان دیگه جا افتاد. این بار سومش با بود دنیای ما با عنوان اشعصیات یا جعفریات جاز و در از این صحبت ارزیابی شد چون جا افتاد و مثل آقای مثلا در اون وقت می که مثلا موسا مجهوده چون خود اسمون که امامزاده است؟ سر پسر امامون مرمون مفید عبارد هایی که لکل واحد من اولاد موسای من قرد از ما و دیگران بینید اطلاق کرام مرمون مفید یعنی بینید عموم مرمونتی تمام پرزندان موسا نجفر رو توصیل کردن الا بعضیشون که بعضی درست نداشت علایه اون وقت موسی میشه نقه امام خود پدره بیشه اونو به خاطر اون اعباقه یا به خاطر نمازی که امام جواد فرموندن در جنازه صفوان دخونه اعتنال امام برای پدره رو به یک نقه قبول کردن توصیل من رو پدره و اسمش آمده مرمونت ما اسمش بر اما پسر رو دیگه واد گیر داشتن موسا رو کردند کردم که اینجا نویرشتر زعی فتا اوند موسنه چون نقطه داریم ها برز رو بعدها استاد به همین کامل زیاداتی اثبات کردن که سقردشون در اونجا هست این سنب لذایی مشکل موسنه اسماعیل هم برداشته شد بعدها که استاد بحث به اصطلاح این مبانی تطهیم رو نوشتن مراجعه جدیدیتی کردن بناشون به تفسیر شد در کتاب عشقسیات خوندم صادر نباسیشون خوندم من این مقدمات رو هستم بخاطر نکته رختم تموم شد اون دیگه خالد از اون نکتهش اینه که مرحوم صاحب مرحوم نجاشی وقتی کتاب عشقسیات رو نسبت به اسماهی نوشته چند تا کتابه مرحوم استاد این اشکال رو بازد کرد تو این اشکال اینجا نیزه نیزه و اون اشکالیشونی که اناقین کتاب هایی که در کتاب نجاشی آمده با اون نسخه که مادرین نمیخوره بزن شده اشکال چیه؟ مثلا در این کتابی که مادرین مثلا دوازده عنوان کتاب کتاب و سرا کتاب بودم در نجاشی مثلا نهتاست وقت نسبتشون هم اموخصوص منورتیه مثلا ما در کتاب موجود برداره باید داریم مثلا کتاب و تفسیره مرگون نجاشی نه یاد کتاب و تفسیره یا حدیثی هم بود که محله کلام بود تصالت ها من کتاب تفسیر بود اینجا هم صاحبه که خونه بیرونی ما نگرم در سال کتاب این کتاب تفسیر لذا مرمومات صاحب فرق که در کتاب اشعسیات اون کتاب که نجاشی اسم نوازه سموتش مشکلیه تمام این که یک کتابی هم به خدا در اینجا هستی در نجاشی نیست یک جایی نجاشی یک دونه کتاب نجاشی موجود نیست. لذا فی مشیخه اون کون خصوصاً اون نظریه که نقشی از بوده سبب از اساساً این که ظاهر حدیثیه که اقامه حدود فقط بواسطه امام محسوم بشه. اصلا کل در اون کتاب ده بناشون میشه کتاب قبول میکنند مشی بروازند. این بحث در مبانی فکری منهاج یجوز در فقیه اقامه حدود ایشون میگن در فقیه هم میتونه واقع بوجود و بخوا از این لوات اشعری جواب بده. جواب اینجور از رواست عشقیات اینه که این بباید در کتاب تفسیر کتاب تفسیر در اداد کتوب نجاشی نیامده. ولی ازار این کتاب اینجا اشکال سندی کردن این مالی شویزه ها اما بعضها به اصطلاح ما اشکال فهرستی می کنن. یعنی ما کتاب عشقیات رو ما روشن که ما کتاب عشقیات به دعاستان موسا, موسا رو توصیف کرده. قبول میکنیم مشکل دیگه اینه که در این کتاب موجود اصلا کتاب و تفسیر هست نجاشی که می سینده کتاب تفسیر توش نیست اون مقداری که نجاشی می نه قبولو میکنه نه با کتاب موجود سالان هم اشاره کردن میکرد که سوال کرد تا من روما خونساری قدر الله هسته تو گامان مرده بگیم این جلده هم چون اشون هم به هم نکه اقامه حدود توسط امام معصوم باید باشه. فقیه اقامه و قدود نه در زمان خیر. ایشون تصا اگاه باو قدیم تا میگه خب شاید در نسخه این طور بوده. شاید اشمولش اینطوریه. پس لازم نیست که نمشه. من تمام این مقدمات ها از گفتم چون ما این مسائل به صورت مستقل با توضیحات بیشتر استراحت. چیز دیگری که بعد ها پیدا شد چیز بوده بگم چیز دیگری که پیدا شد هنوز همو من نوکس شده نمی‌دونن مرحوم نرجسی غیر از این کتابی که به اسماعیل نسبت داده یک کتاب هم به خود موسی نسبت داده این خیلی عجیبه یعنی هم عنوان اسماعیل رو موسی نرجسی داره هم موسی به اسماعیل داره مشابه که جواب بده این نشون میده احتمالا در زمان ایشان کتاب اشعث یا دو کلیه بوده احتمالا این تلاشو نگفت، به چون کار به این موسسه اصفهانی کتابو تاثیر رسوند. این قضیه برای متعجب آور شده. اینا بچن شده نقطه. اون احتمال که الان به ذهن ما رسیده که این کتاب ممکود در حقیقت مخلوتی از دو کتاب که در جایه یکی کتابی که به اسم اسمایی اسم برده یکی کتابی که به اسم پسر ایشان موسف نیه اسمایی اسم برده با اونا که همین سنده ده. لذا من احتمال بودم نسخه هم که آمد و بعدا مشهور شد این در حقیقت است از دو کتاب حالا چرا در زمان نجاشی دوتا تاشون هم من نمیبرم, نمیبرم, نمیبرم. پس کردم این کتاب در چندین قرم در اصحابه ما جا نیفتاد نسخه هم که بوده؟ کتاب هایدیری سخورده <تصفيق> من همه سیزده ها دقیقه این تمامی مقدامات گروبی بری دفت چون من یک دفتی دیم خودشویش متعدد موسیم اسماعی شده بعد آماده نگاه که من کتاب, تفسیر این نسبت داده. تفسیر یعنی کتاب تفسیر رو به این آقا نسبت داده کتاب تفسیر تو یعنی در حقیق کتاب تفسیر رو به پدر نسبت نده به اسماعی به موسیم نسبت داده لذا این به ذهن من رسیده که حالا شاید تو اجازات بغداد اینجوری بوده یک قسمت کتاب رو به پسره نسبت دادن همون راویه همون محمد محمد عشقه راویه کیه وقت احتمالا تو نسخه هم بین این دوتا تلفیق کرده تو نسخه هم چون راویه اخیر یکیه اون محمد بن راویه در نسخه هم نسخه موسا با پدرش اسماعیل یک را شده این ترجمه نیمه کدوی ویژگی‌های تاریخی و دارایی از 2000 چون جدید نوشته شده خیلی تازه دیگه دو ماه دیگه در شاید نافع باشه. هر حال حق در مقام این است که من ثوابت توضیح این نسخه ارزشش نمی‌ذنی بده. جوش بحثش اینه که وقتی رجالی از داخل فایده نداره بحثه تاریخی یا فلسفی باشه. توضیحاتی که ثوابت دادیم درست این که برای جواب. نمیشه فقط بس راهبر رو الله